شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلال الله علی سیدنا رسول الله و آل حیبین و طاهرین و معصومین و, و دائمت و علی عرضت مجمعین و, و حمد و افرم و رحم المشترین که دیروز که روایات رو بررسی کردیم یه نکته ای رو یادم رفع ارز کنم که در بحث اول ولو ما گفتیم متعرض اقوال سنیا و زیر بناهای اونها شدیم بله ولو متعرضه به استادار اقوال و بحث و بحث تصوری قرار دادیم که مجموعا چی گفته شده حالا اگر ما بخواهیم واقعا بدون جزات دیگه همون مجموعه روایات و اقوال صحابه و تابعین و کارهایی که شده همه رو با هم بررسی کنیم بخویم جنبه تصدیقی انصافاً از حیثیت المجموعهش حرمت اقوال نظر میسته تا حدی که مثل ابن حزم قائله اون رأی مشهورتر که با ادعای اجماع شده بین علماشون اقوال نظر و اگر برفرض هم به خاطر اشکالات سندی قبول نکنیم اقوالیت رو قطعا احواته بلا اشکال احوات همون راجع رو که در نهایت شوکانی گرفته با سعی سرکل افراد زیادی رو به عنوان اباهی رنا که روشن هم نبودون بحثه که ایشون کرده انصافا اونی که ما داریم اونی که مجموعا در این مساده موجوده اقل احتیاط وجودی در ترک. این حد اقل این دیروزی ها دارم رو برز کنم نظر اجمالی به روایات خود ما که بحثی که شده راجه به حدیث باب به اصطلاح نونزه رو خوندیم از این جامعه اله حدیث هدف حدف نرو خونده بودیم اشاره اجمالی تون سریع حدیث شماره 41 رو از اوالی نمی کده اوالی لالی از پیغمبر اکرام از خیلی بزش حدیثش ضعیفه لیکن مضمونش ظاهرا جمع کرده باشه نشود خود من به عباد نجاح بکنم مضمونش در بعد در جمعه روایات آمده نها احنالغنا از و... این با باید الاتردیل این که بسیم قبولش بکنیم از خیفن نه نها احنالغنا و انشاءال مهمیت این هست تو مسادر احلی سنت هست و ابو امامه با. فقط چیزی که داره بلن یو جب زب هنه الا فنیاهه ازالم تبای در نیاهه امسای نیاهه و نور خونه هنه نیست فقط صدای خوبیه نیست و فی هدا زملم هست زملم ترکز شده شطور شطور هایی که یا آبکشن یا بار برن زامله بار و فی الاحراس در هم در این لمی اسمه هر رجال و اجانب ولم تغنه بالباطل این لمی اسمه هر رجال اجانب این اصلا رفی رو پیغمبر نداریشون و زیل حدیث پیغمبر این از امام سادر نهر شده ولن تغنه هم در ما اما در فتوای اصحاب آمده حدیث شماره اون حدیث چلایی خیلی ضعیفی داره به هر حاضر ستاره کرده نیاهه و هدا و افز در کتاب قربل اسناد از کردن این توضیحش ارز کردن در بخشی از قربل اسنادی که وضع استرندیش خرابه این توضیحات شده چیگه تکرار نمی به هر حال علامه های موجود این برگشت روایت به حضرت موسیقی جعفره که و این روایت به این متن الان پیش اصحاب ما منفرده و در کتب کافی و کتب حدیث ما هم نیامده فقط در دو جا آمده که هر دو ضعیف هستند. یکی در کتاب بهار و وساقل آمده که خیلی سرد ضعیفی یکی در بخش دوم گربل اصناد که معلومش خود و گربل هم با اون تحمل داشته قبول نکرده به هر حال این روایت هست و از اسفندیش و مستریش ابحام داره در اینجا فل فطر ولعظه ها و فرح فطر و عظه ها و فرح شاید از فرح همون عروسی باشه که سأل تو اخی فقال لا بأس به مالم یعص به یا مالم یعص به خود مطر هم اختلاف داره و از کنی مرموم ساکفایه فازد سبزاری بیمین حدیث هم رسول کرده و اینکه اشکال نداره خودشی نفسه حلاله روشن نیست این مطلب و اما نسبت به قطع نظر از روایات یعنی در روایات ما فقط همین روایات آمده که قابل قب... یعنی یک کمی قابل قبولتر استثناء شده این و فرح حالا فرح رو اگر بذاریم به عروسی یا بذاریم به مطلق غلظه هست کردیم مثلا صاحب جواهر قدس الله سره ایشون میگه اگر بنا در عروسی جایزه فراصل در مراسم خطن سوران مثلا مراسم. یا مراسم دیگری که میگیرن برای فرح و شادی و موشب نواربی مثلا ایشون میگه نه دیگه در اونا جایز نیست فقط عنوانی که هست عرض عروسی صاحب نه هر جا فرح بود این عبارد اینه که فطر و عزها و فرح و این در روایات پس در روایات ما که عنوان اید و فرح آمده منحصر به همینه ما دیگه غیر از این نظاریم منحصر به اینه بله اعراس روایات دیگه هم داریم اما این که ایدم توش باشه منحصر به اینه این راجع به روایت ما که سنده شماست داری ضعیفه در کتب اهل سندن اعراس هست از پیغنبر و سیره عملی هست حتی در اینجا داره که همون که اعز کردم پیغمبر میگه شما این عروس خانم رو بردین انصار اهل غذر هستن این شعر بکنین حتی در صور که بیرین بکنین تو اعراس هست که سند روشنگ نداره اون روایت ابن ماجه توی اید هم همین روایت معروف آیشه که روز اید بود و دو تا جاریت ها منال تو توهرنیان اون در ایده که روایت آیش هست و اون روایت دیگه هم در عرضه پس بنابراین این دو تا استثنان در روایات ما منحصله به این روایته که دو آمده باشه اگر فرح رو آن ارس بگیریم و در کتب اهل سنت متعدد آمده یعنی دو تا روایتی یکی نیستن این را جبه این چون رو... روایت قبول اما... نه این اگه قبول بکنم مهندشین اصلا قنات این حرام نیست مرمون کفایه به این تمثیفات از کتاب‌های فقره مرحوم فاضل صنزی اصلا گفته من چه به را نیست این روایت و ما توضیح دادیم این روایت قوربلستان از سرش گیر داره ولی آقای قبوله این روایت قوربلستان سرش گیر داره غیر از کلام عبد حسن تذیه یعنی توثیق نشده اصلا کل این بخش دوم قوربلسات گیر داره سر هم وسائل و بهاره که حمام گیر دارن یعنی جزء از اف است که ما فعلا از علی ابن جعفر داریم از ها ما هم نرمه یه اینجا نفسیه از اینجا مالم چون این مالم یو که در وسائله احتمال میده مثلا مالم یو عمر باشه یا عمر یک اصطلاحی در غنا باشه احتمال داره که نوع اصطلاح باشه در بهار هست مالم یوز مربه در وسائله از مالم یو مربه در قربل استاد از مولا یوق شبه سه تا مصدر سه تا نسخه ازش که دیدیم که تشخیص بده حدیث شماره ای به اصطلاح 43 که اینجا از کتاب دائم نقل کرده این حدیث این حدیث شماره 43 این در روایت دیگه ما آمده این روایت سند دائم الان ضعیفه این دواتی یک جای رفتیم در مدینه و حضرت فرموند که چه ها اینجا اینجا قناه هست و اصلا کن و کرام هست ادامه رو به لغه من رو کرام هست اقلا وقتی رد میشین گوش نکنید این ربایت مضمونش اینه این هم از امام باقر سلام الله علیه این مجموعه چهل و سه تا که شماره گذاشته بقیهش رو هم تقدمیتی سالات من دیگه نمیخوام به خود می در باب بیست این در باب تحریم کسب مغنیمت است. حدیث شماره 1 سندش به اصطلاح اشکال داره به خاطر علی بن ابی حمزه توش داره سعل تو ابا جعفر. اگر این باشه این یک روایت نیست که نشون میده یک غنا نفسه حرام نیست به ملازمات خارجی حرام نیست. توضیحات مفصلی ارز کردیم اولا به احتمال قوی عبی عبدالله ابی جعفر نیست و مرد روات هم کاملا متظاربه و کلینی هم هر سه مرد با آورده عباسه لازره نمی چرا الان یاد بعد توضیح خودش دیگه ما فعلا وارد اون درست نمشیم شماره دور سند حدیث شماره دور صحیحه این هم همین دعات عبی بصیره اونم این عبی عبدالله وقت میگه در اعراس اشکال نداره اگر رجال برشون داخل نشه سه حدیث شماره دو حدیث صحیحه شماره سر همینطور شبیه همون حدیث حدیث شماره چهار این هم از عبی بصیره این هم سرالشه میشه با زحمت درست کرد که این فقط این المغنی از این تضفل لا لابعث به کسیبها که این هر ستا رو مرحوم کلیمی آورده این فقط اجمالا لابعث البته از کردیم یه بحثی بوده که ممکن است بگیم غنا مغنیه مغنیه و مغنیه پولی که میگیرن حرامه در خصوص عروسی جایزه خود در بکنیم بگیم این روایات نازره به مسئله پول گرفتنه اصلا نازره به اصل غنا نیست ولیزا توضیح دادیم در کتاب نهای شیخ توصی، بحث غنا رو که به حوضه استثنانه به عروسی رو بعد از دو صفحه نوشته، ولا بحث به عجر مغنیه در عروسی اگر لا میتونه علیه و جال دارد تو تکردم به الباطل احتمالا کار شده و گفتیم که مرحوم میشه هم ملازم قاله انصافا حق با ملازمه است یعنی عرفا بعید ما بگیم این عمل فینسه حرامه اما به خاطر عروسی اخذ اجرتش جایزه خیلی بعیده انصافا خیلی بود داره خیلی بود داره حدیثه شماره 5 بله عذر کردم این حدیث شماره 5 میشه با قرائمی درست از حضرت صادق (ع) این اینم در کسب مغنمیه حدیث شماره شش این عین همون حدیثه هیچ فرق نمی کنه اون هم همونه یکیه شماره هفته که ایشون رو عبارت فتوای مح... کتاب مغنه و هدایه شیخ صدوقه از اینجا آشاش یه توضیح رو اعرض بکنم ما اعرض کردیم در مسادر ما تا اینجا از رسول الله داشتیم ربایتی بود که سکونی بود اما امیر المؤمند هم تالا توش بود همین رواز سکونی و از امام حسن نداشتیم از امام حسین اگر به وجود سندی سند به امام حسین بخوره اونم داره چون از وازه چکونی سندش نه جعفر بن محمد عن ابیه عن ابائه عن علیه سند چکو جعفر محمد یعنی امام صادق عن ابیه یعنی امام باقر عن یعنی عن سجاد عن الحسین علیه که اصلن این این تعبی تو مسند زید حسنی الان در کتاب مسند زید زیب انا ابيها سجاد انا ابيها حسين انا ابيها امير احتمال لطيفشه که امام صادق مخاطره این خطابشون به گفتن ولی از قاعدهش اینه یعنی قاعده رجالیش اینه یعنی استاندارد استاندارد اهل سنت اینه هر رابطی که اسمش تو سر آمد به نسبت داده استاندار دشینه حالا ممکن است بقول شما امام از ما مثلا قاعده کلی که کل... من عین کلام من مثلا اینطوری ولا استاندارد دشینه ده نفر بدی استاندارد وقتی توی خبر توی صحیفه بزرار داریم اونجا هم اسم امام حسین هست اگر اینها اسم امام حسین بیاد از شهزاد ما روایت دره از حدا سجاد هم داریم معارض هم داره که بعد درز می‌کنیم از امام باقر هم داریم امام صادق هم داریم موثثن جهتن یکیش اینطوری رو کلام خوندیم غیر از این هم داریم که جایز نیست از حضرت رضا تقریبا تمامش اینه که جایز نیست ما از امام رضا به بعد دیگه توش تردید نذاره آخرین تردید ما حضرت موسیقی جفتره <تصفح> <تصفح> نمی‌دونم نه انها نداریم تردید نداریم قصد دمان امام رضا کنه بوده سالهای دیویست خوب دقت نکنم مخبی نقصه یه برای معرفت شما به میراس های شیعه رو خیدیم از امام جواد و امام اهادی و امام اسکری هست چرا یک حسن هست که اگه مورد امام اهادی باشه نداریم از بقیه الله هم داریم در اون توقیب این به لحاظ اعیمه علیه مصدر پس تقریبا در اعیمه ما از سال دیلیس دیگه کاملا واضحه که نه شده به حساب این موجوده در روایات اما به حساب کتب حدیث خودمون و نقل تراث ما یه تراث اولیه عرض کردیم منابع اولیه‌ای داریم اونایی هستن که از خود ائمه نوشتن تو ایده از مصادر اولیه‌ای داری انسابت داری اما مثلا فرض کن تو مصادر اولیه‌ای خیلی مشهور هست مثلا کتاب حریز نداره از حریز روایت نداره اما داره تو مصادر اولیه داره تو بعضی از مصادر اولیه‌ای کتاب علی بن جعفر میشه معارض داره یعنی ما یوش رو به المعارزه. در مصادره درجه دو که من انتخاب میکنم متوسط متقاعد، متوسط مثل کتب عبید سعید، مثل کتب عباسیم، کتاب آن عازر حکیم، محمد بن احمد بن مثل کتب محمد بن اون اشتباه گلوبه. این مصادره درجه دو. در مصادره درجه دو هم، در مثل کتب عبید نیعهیا می‌ونم دارم. فقط معارضی که الان مادری در کتب عبید سعیده، دوست دارید هست که به اسوار معارضه؟ منحسنن در آثار محمد حسین سعید این از روشه مسادر متوسط که این مسادر متوسط حدود سالهای دیسته خیلی لطیقه یعنی مسادر حدیثی ما هم با عهد امامت میخورن مسادر درجه سه مسادر متاخر این اصطلاح بنده سلبته مسادر متاخر اولش مثل کلینیه کلینی و صدوق اینها و یک معنای هم فخور رضا اینا مسادر متاخل یا مسادر در که هر کدومش شهر توضیحی داره تا اینجا نیست در مسادر در به بعد یعنی مسادر در جه سه که بعد هر چه از اینا گرفتن در مسادر در به اتفاق حرمته الا یک روایتی که کلینی عورده با سمت که ظاهرا خود کلینی هم متخیره و صدوق با یک متن خاصش اوبرده و ابلاغ در بی‌استثنا این روایت واحده تمام روایات مصادر متأخر ما هم بر قامتونه و من جمله از مصادر متأخر ما فقهی است که در قبل از مصادر متأخر تدوین شده فقهی است که استراحت میشه به منصوص میگن یا تعبیر بنده مرحله انتقال از روایات از نصوص به فتاوا این من چند بار شرح دادم این از خصائص ماست هیچ فرقی از فرقه احضی سنت این مرحله رن برن. مرحله انتقال از روایات به فتاوا. در این مرحله انتقال هم حرمته در این مرحله انتقال هم حرمته مثلا مغنه شیخ صدو یا کتاب هدایه شیخ صدو یا ففر رضا اولین کتاب ما در این جهت ففر رضاست سماره رضا اختیار رو حرمت کرده این هم راجع به این شماره هفتی که ایشون گفته ارزش این شماره هفت رو ارز کرد. شماره هشت روایتیست که از به سبع ابلحسن سلام الله علیه که الان ارز کرد از ابلحسن مختلفه اون در سمن مغنیه است که امام میفهمد که این سمن جایز نیست و به شدت امام با این مطلب مخالفت میکنن و اجمالا سندش خوبه یعنی مشکلی خاصی نداره این روایت جزو روایته معتبر حساب میشه روایت شماره 8 روایت شماره 9 چون پس از مصادر جعفر هم غیر از اون که روایت علی مجادر حرمته روایت شماره 9 از همین توبه مبارکه در توبه ما و سمن المغنیته حرامه اگر این توقیع مبارک حدود سالهای 300 باشه مثلا 200 سال 300 باشه این معاصر است با مصادر متأخر ما انجام داره که ما این آخرین حدیثی است که ما از ائمه داریم این یعنی در مجموعه مصادر ما از رسول الله داریم از امیرالمؤمنین داریم امام حسین به اون معنا داریم از سجاد داریم حضرت باقیه و حضرت صادق و مصمت جذب و حضرت عضا و بقیت الله مجموعه روایات ما و ما کرانه از کردیم روایت اصحاب ابن یعقوب این توقیه مبارد به لحاظ مستلح رجالی توسیق نداره اما شواهد قبول زیاد داره این توقیه مبارد قابل قبوله و توضیحاتش سابقه نرس شماره ده این شماره ده با شماره هش یکیه بازم برگشش به ابل حسن اول موسیم جعفره که اینم حرمته از اون حرمته تند این سمنه کلبه و المغنیته سخته از اون رواز تنده موسیم جعفر سامون داره حدیث شماره یازده این سند سابقه هم گذشته یاد آج مراجعه کنم مشکل سندی داره سهل نزیاد سابقه هم گذشت اینجا هم از این هم اینم تنده میفرمون سمن مغنیه کلبه سمن کرد. حدیث شماره به اصطلاح دوازده بله این رو ارز کردم شاید بشه با بعضی قرائم قبول کرد برمیگرده بعضی عبی عبدالله علیه السلام اونجا هم همینجوره تعلیم قناه و خود قناه همه به امام صادق حدیث شماره سیزده چون هدف ما سریع خوندن رو خوندیم قطف راوندی در لب بلو باب این از آحادیث آمه است ارجاعش به آحادیث آمه است و این حدیثی رو که اینجا نهاره کرده در مسادر آمه از ابو امانای باهلی آمده توضیحش توضیحشم گذرد حدیث شماره چارده باز اوالی از پیغمبر نهاره کرده اینم هم مثل همون حدیث قبلیست از اوالی بیشتر خراب کرده حدیث رو باز اون به بلو باب کمتر حدیث شماره پونزده این از حدا سجاد و منحصرا تغییر نرکده کرده و مرسل هست انشرا جاریتون جاریت لها صوتون به این مثلا احتمال دارند که مراد لها صوته مغنیتا ما علی درو شری تمام لكن انصافا به این حدیث تمسک کردن اصولا عرض کردم دو بحث بودی یکی اینکه جاریه و کنیز مغنیه باشه یکی یکی خوش صدا باشه این خوش صدا بودن به خاطر خوش صدا بودن که ایمانش بالا بره این مضر نیست بیت درسته بود دقت ببینید حدیث شماره 16 اینجا که از بازم موسی بن جعفره یک شخص مجهودی نقل که احترانا سنی باشه و تو جوالتو قداد فاشتر المغنيه خود دقت کنید اول جاریه تو سننتو علی اوه. یا مغنیه از اون جاریه نه صدای خوب داره اگر اینو این بعد تربیتش کنه پردارش کنه مغنیه خوب میشه الان مغنیه نیست پس اینجا داره انجاریه دلها سو تکیال تقیال کردن مراد اینه که اگر انسان جاریه مغنیه رو بخره و ازش در غنا استفاده نکنه در مثلا قرایت قرآن اشکال شده این حدیث, حدیث هیچ ربطی نداره این حدیث معارضی که تصفاکه اینه انجاریتن لحاظ صوت لیکن انصافه هم مورد حدیث و این اشکالی هم نداره خب تایتون جاریه در از نظر قدر از نظر شکل از نظر لون از نظر خصوات گوش و چشم و حلق و ممکنه قیمتش بالا پایین بشه خب این طویلیه به لحاظ صوت حسن هم قیمتش بالا پایین بشه این مشکل نداره. اونی که مشکل داره به لحاظ مخنیه بودن قیمتش بالا داره بزن. پس این جاره واید هم دلالت هم البته این هست من از کردم. انصافا در مجموعه استعمال گاهی به خود سوت حسن غنا گفته شده و این معلوم نیست حرام باشه انصافا ادهی هم که در شرح عواز شوکانی گفتن ادهی از اهل سنت گفتن غنا جایزه مرادشون سوت حسن هستن و انصافا درسته سوت حسن داره برای برای پس حدیث شماره پونزه هم معارض نیست میمونه حدیث شماره شونزه اینه بله اصحاب فتوا دادند یعنی بعضی اصحاب میمونه هم سوال بلسایه چون در اینجا داره که من جاریه مغنیه اول جاریه توحسن و انتوغنی اورید و به هر رزق من میخرم میفروشم من از هیچ کار ندارم نه قناع بکن نه کاری لا سوازازک فقاله این روایت سملا زعیفه در جز روایت معارضه در جنا نیست در جاریه مغنیه این رو نمیشه قبول کرد ولو مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه قبول کرده این دراعته. همان همه انصافا نمیشه قبول این تا اینجا روایت موسلم جعفر یک روایت از موسلم جعفر معارض هست در باب شراق جاریه که قبولش علا آمون هم سنان ضعیف روشن نیست و هم اصولاً احتمالا شخص از اهل سرنت اصولا معنوم نیست خودش معلوم میشه کنیز فروش و برده فروش بوده حقیقت اون روشن نیست احتمالا حضرت با او تقییتا صحبت کرده. این راجع به باب 20 راجع به باب 21 یک سریعا حدیث شماری یک این رو از نوفری انسرکونی این رسول الله هم. قال قال رسول الله گذر این اولین احادیثی که از رسول الله مثل این باز حدیث شماره دو جعفریاد ان علیه طالب قام قام از کم جعفریاد با سکونی یکی توضیحاتش گذشت. باز حدیث شماره سه دنگی شماره زده برش حدیث شماره سه دعائم ان رسول الله اینا یکی هم. هر سه یکی است و اصولن ارسلند غیر از اینکه کتاب سکونیست و جعفریات اینا اصولن یک مجموعه ای بوده که از امیر سلام الله علیه شده به مصادر مختلف و اینا روشن نیست به لازم سندی مشکل از مرحوم استاد خصوص سکونیش قبول دارم بقیه نه کتاب اوالی البته جعفریات و هم چرا این قسمت‌هاش قبول داره کتاب اوالی حدیث شماره چهار و فیل حدیث ادنالسان نها از ضربه به دفت توی یه روایات ما تا اونجایی که من بیدم البته استغرار من کامل نیست دف اینجا آمده چون انسان خصوص دف تو کلمات احل سنت و شاید در خ... قرآن خارجیش فرمی کل با بقیه ابزار تو روایات ما که سریحا عنوان دف آمده یکیش اینه یکیشم قطب راوندی فیلوب بلوباب الله حضمت دف تبیر از روشنی کلمه دف تو رو نداره بله در این کتاب اوالی یه قیبی زده و دخول الا و در فی الاملاق ولن یه جا و دف زرب دف هم اجازه داده میشه. الا در عروسی و زفاق به شرط انتکون فیل بکر ولایت خلو رجال علیهن نده این رو هیم جای دیگه ما ندیدیم از این مرتبه که حتما در عروسی هم باید بکر باشه غیر بکر نه اشکال داره ضرب در فقط در خصوص این حدیث شماره چهار فوق علاقه زعیفه حدیث شماره 5 در از مسادر احسانت الان من نمیزونم از کجا گرفته الان در ذهنم نیست حدیث شماره 6ش، عن نبی نوهين و ان صوتين احمق وقتی این حدیثو در اوادی را با ابو اوانه ان ابي ليلى عطاء ابن ابي رواحه انجابه این حدیث به عینه در مصادر عامه هست با همین سند با همین سندی که ابو دین آورده در مصادر عامه هست ما نداریم دقت بکنید من باز از نکاس رو تکرار میکنم برای اجرافتایی نوهيتو یا نوهين و ان صوتين احمق ما نداریم اهل سنت مهمترین سردشون همین سرده جابر ن عبدالله انصاری ما نداریم یه نکته ظریفی رو می‌خوام امروز بگم که خوب دقت بکنید ما گاهی اوقات حدیث اهل سنت رو نداریم خوب دقت بکنه حنایز بفرمایید لا که اون حدیث یک لازمه ای داره و هر فرعی داره گاهی ما اون فرع رو داریم روشن شد چی می‌خوام بگم اصل حدیث رو نداریم فرعه آیا از وجود فرق در روایات ما اثبات نمیشه اصل مطلب مفقوق الان بوده؟ نه، دوشن شد ما این حدیث که نهیتو یا نهینا یا نهینا یا نهیتو ان صوتین و غن صوتین احمدی فاجره این رو ما نداریم ما از احلوی. اما ما به سند معتبر مرحوم شیخ طوسی البته منصرد از شیخ طوسی است. از حسین سعید بن عثمان نیسا سالته عن اجرى نائحه والمغنيه که اون صوتین احمق که نوعی جنس یکیش ناهه است که روزخونی میکنه به اصطلاح ناله میکنه یکی هم مغنيه اون نوع جنس صوتینه احمقه به اصطلاح بالا در اسانید مختلف که یک تعبیرش اینه که صوتن اند النعمه و صوتن اند موسیبه یا نوحتن و مغنیه یا نائحه و مغنی خوب دقیقاً ما حدیث نداریم اما یه فرقی داره فرقش اینه چون پیغمبر نه کرده از نائه و مغنیه حالا که نه این فرموده اگر زنی آمد نوه خود پول گرفت این پولش حلال یا نه چون پیغمبر نه کرده مرموشت و مرموشت و مرموشتش مرموشت و مرموشت چرا؟ دقیقه که این چی بخواهم بگیم از این که آمد نه سعر تو عجر نائهت و این نائه و مغنیه همون صوته این احمقه اینه اون منظور با آیه مجردی رضا شبیه بود دقیقه آیه مجردی هاشیه اینجا نه این نکته دیگه تفریعه یعنی این که سؤال میکنه سالتون انعجر نائه و مغنیه این مناسب با این است که نه یعن صوته این و مغنیه خود ناهم قدیر ما نداریم ما این طرز صوتین احمقی نداریم یه بحثی لطیف و جای دیگه‌ به درد خور چون کمتر تعرض شده خوب دقت بکنید ممکنه یک مطلبی پیش آیا سنت آبروچی آی بفهمه یک حدیثی بین اهل صورت معروف بود، اهل بیت رد نکردن، نه نه من مورد قبول ماست طرف اولجدی این نه یه چیز دیگه‌ست یک حدیثی بین اونها هست اون مسئله یک فرقی داره خود اون مشریع اگه اون حدیثو قبول بکنیم. یو فر رواله یعنی فر, فر رواله یکمتلا اون فرعه تو روایت ما بیاد نه اصله شاید اگه اون فرعه موضوع... خب اشکال نداره از این که میاد از فرعه سوال میکنه یعنی اصل مسلم بود یعنی ملازمه قبول نشده حالا اون بحث ملازمه نتیجه بحث دیگریه تقصد بکنید اون کرهه و اونه حرمه سأل تو اعجر نائهت و المغنیه فکرهه و رواتینه من به اون جدی کار ندارم فعلا که اون کراهه وانه کراهت یا نه حرمته خوب دقت کنید نکته فنی شو چون برای حدیث شناسی موثر راه اختصاص بینجام نداره من نمیگم حالا مثال میتون خیلی بحث ما طولانی شد. دیگه مثال خارجی هم از بعد. گاهی اوقات یک حدیث دین اهل سنت هست ما واسه دیگر ما اختصاص نداره ما نداریم این حدیث رو لكن در دین اهل سنت اون حدیث داره فرع اومده تو فقه شونه تو حدیثه و حارث تو روایت ما میاد بگه که خودش این حریس بوده که صوت نائحه و صوت مغنیه جایز نیست از اینکه از انجل سوال میکنه سآل از انجل اگه جایز بوده که دیگه سوال ما قد بکنه خب جایزه که به این نیست عجره میگه موز میگیرم نه این متلم نیست چرا؟ چون این به سنت رسول الله چون اینا مخواستن من چند دفعه ارز کردم اینا یه اعتقال داشتن اگه حرام به کتاب باشه خیلی آثار داره اما حرام به سنت باشه مجموع آثار نداره نه به تفکر فقه های اون زمان دقیقا این توضیح رو موقعا سوما بکنم این روایت شماره شش رو که نهین انصوت این احمقه ما نداریم دقت میکنید اما فرع شما داریم و پس باید طرحش هم مقتبقه دوزم موثقات سما است. لیکن انفراد شیخ تو شیخ توتی منفرزن نرفر بود این راجع به شماره شش شماره هفت مرحوم شیخ عبالفتو راضی در تفسیرش شیراب و موثقیت اهل سنت رو برده. این روایتی که رو در ابي امامه رسول این حدیث بسیار معروفی از ابي امامه لكن گفتن تمام اسانیدش اشکال داره و بهترین سندش شده علامه والی الان در مصاد احمده ما نداریم این رایی که آمده نداریم حدیث شماره 8 این از روایات ماست این راجعه به ابي الر که خیلی مفصله و چند بارم خوندیم صحبت شد بعد سند روشنی نداره اجمالاً درسی حدیث شماره 9 مرسله دعاه بله. با آنان روین و آن جعفر محمد نه او سوائل عن لحظ غی وندها سندکر او. این مضمون رو الان ما در روایات اون از ما م حدیث شماره ده این جامال اخبار می که از علمای قومطبا هم دوره مربون و صه احمد جعفر جعفره احمد قومی محد بزرگار است. ایشون چند تا کتاب داره که بعدش تا زیارم چاب شده این جامال اخبار عروس و مسرسلات اینها ایشون جامال اخبار مراد این کتابه نه اون جامال اخباری که مال شعیری سبزواری قیل از اونه قال رسول الله یوک شرا صاحب و تنبور یوم القیامه این نصف داده شده به رسول الله اما الان نداره امسا تو این کتاب داره و صاحب و دفعه مثل لالک گفتم من ترواتیون نیست اینجا آمده میشه روی بعضی از مبانی قبولش کرد این حدیث اجمالا از حضرت صادق و اینکه یک شیطانی است که, که میچنه برای شخصی که گفته شده اجمالا میشه قبولش کرد حدیث شماره دوازده مشکل سندی داره به خاطر همون سهل بنزیاد و شبیه حدیث سابقه دائم هم نهار کرده یکی برمیگریمون حدیث شماره به اصطلاح سیزده این رو در کافی آورده سندش هم مشکل داره بله البته این که غلط چاب کرده سندش هم مشکل داره لکن این نقل شده به حضرت سجاد این روایت هم لا یقدس و لا ها این روایت هم شبیه همون روزی که الان گفتید اشاره به نهیت و انصوته این احمقه امام فرم لا یقدس و لا ها امت فیها یه یعنی بربت و عود و بربت باشه که به حساب موسیقی خونده میشه و و به اصطلاح نایتون تن یا نائحه تفجج تفجج یعنی یا صدای موسیقی یا صدای نوحه این احتمالا شبیه اون باشه حدیث شماره 14 این حدیث هم رو همون مبانی از کتاب جعفریات محل قبول به هر حال این منصوب به امیر المؤمنینه و قطعا هم از سرمیه های حتی کوفه فتوا میدونن بگیم میشه شواهد قبولش داشت به اسنادی امن علی رف علیه رفع علیه رجان کسر بر وطن و ابتله بود این حدیث هم نشون میده که مثلا همون قواهد که باید اصل وجود اینا از بین بره اصلا اون رو زامن قرار نداد. اصلا ما مالیتش رو هم اعتبار نکرد. یه توضیحاتی صادق ندادید. اینم ما از علی بن ابی طالب این اجوالم بد نیست. دعایم هم داره. از دعایم یه زیادی هم داره. اعتبار می‌بینیم دعایم از کتاب و شولان اخذ شده. این توضیحات بده. از شماره 14 هم از امیرالمومنین. پس معلوم شد ما مجموعه از امیرالمومنین هم در داریم در موارد مختلف قنا. حدیث شماره 15 رو از حضرت رضا, رضا نرل کرده و بعدم حضرت تعبیر و مومنه خیلی سنده زعیفه قابل ارزش نیست ذکر زعیفه بشید. حدیث شماره بسا 16 این هم یک مقداری گیر سندی داره و این همون عبارت یونبتون نفاق فلغلب که یک بلخواد روز ده به اون شد این هم باید یک توضیح به در ارز میکنه. حدیث شماره 17 اونم به هزار رضا صادق نصف داده شد حدیث شماره 17 حضرت رضا در کتاب فقور رضا که البته این داجه بین که آلات قمار و آلات یعنی شطرنج و آلات چیز این میشه حدیث شماره 18 بازم از جعفریان از امیر المومنین اینجا دفوف هم داره من دفوف از کردم که کم داریم اینجا هم داریم حدیث شماره 19 چون این رو تکفر شده دیگه این از مقنه صدوقه که فتوه ایشونه لیکن فتوه ایشون حدیث شماره 20 سندش مشکل داره این راجبه اینی که اولین کسی که ملاحیر قرارداد داد آب ابلیس بوده این از ابو عبدالله حدیث شماره 21 مرسله دعاهمه این از امام صادق که پدر من نگذاشت من در بچگی هم گوش بکنم غنا رو قبولش مشکله حدیث شماره 22 این همون است که توضیح داده مفصلن از کتاب صحیلت و رزاست. در اینجا ارز کردم به شما ارز کردم حدثم یه عبی علی ابن الحسین حدثم یه عبی علی حسین ابن حلی ارمان ارز که اسم او حسین هم هست اگر این مقدار را کافی بده خوزن تصریح به حدثم ها شده پس اسم حضرت سید و هست این هم راجع به حدیث، لكن سند حدیث ارز مشکل داره حدیث شماره 23 این مرفوع است در خصال سیاری هم در خیلی ضعیفه و به نظر ساده حدیث شماره 24 رافی منحنفی نداره حدیث شماره 25 ام از کتاب زید نرسیز که خیلی مشکلات داره حدیث شماره 26 و 27 از قرر عاملی است که مرسل از امیر المومنین وضع روشنی نداره حدیث شماره 28 مرسل ورامب نبی فراس البته ایشون از قال علیه السلام از بله لیکن در اوالی از پیمنبر نقل کرده که وضع سندی روشنی نداره حدیث شماره 29 یکی از صحیفت رو رضا سینن اینم این سندش مشکل داره روشن نداره منصوب شده به حضر رضا حضر رضا به همون نصر اناباهی تا امیر المومنی تا رسول الله القطب راوندی به اصطلاح بله یک چیزی گفته کرفسی دومانه نصیح نداره خب این راجعه به باب بیست و سه بیست و بیست و دو و سه هم ماشاءالله خیلی زیاده دیگه اگه با خیلی طول بگیشم آره خودشون براجعه کن چون خیلی از از هم به اینه ت مجموعه این روایات که ما الان خودی نتیجه نهایی از این روایت چه مجموعه روایات هم معتبر این که مرحوم مقدس اردبیلی لم اجل روات صحیحا صریحه شاد تو کتب اربعه بوده در مجموعه کتب داشتیم در کتب اربعه داشتیم و روی مبانی مختلف اگه حساب میکنیم بازم هم داشتیم مثلا روی مبنای خودی روایات سکونی معتبر بود حالا شاد مرحوم مقدسه اردبیلی معتبر نمی‌دونستان پس این که بگه ما روایت نداریم این روشن نیست بلکه غیر است اضافه برای این که معلوم شد چقدر متعدده بله سیر تاریخی رو من عرض کردم اوزعه روایات ما یک نواب شده از زمان حجر رضا مصادر اصحابم تقریبا از زمان حجر رضا از هین انتقال به فخوا هم است. تنها در این انتقال به فتوا یکی در بعض از مسادر هدی آمده که این غنا نیست یکی هم احراس آمده اما ما یک روایت سریحی داشته باشیم که لا یجوز غناه لا تلحراس که در کتاب, م... کتاب های عربعه ما آمده باشه کتاب های مشغور ما آمده شو نداریم چرا تو اوالی بود و تو بعض دائم بود و تو اوالی بیشتر بود که اینا ارزش علمی ندارن پس بنابراین و در کلمات اصحاب ما هم از فقها خصوص اعراس یا حدی رو خارج کردن اما تو روایت اید هم داشتیم روایت اید هم منحصر به یکی بود اهل سنت هم ایده داشتن اون هم روایت بود که آیشه بود این مجموعه یه روایاتی دیده که ما در مقام خوندیم تا یک بابش هم نخوادیم چون خیلی طولانی شد به انصافن با در نظر گرفتن مساده و در نظر گرفتن روایات و در نظر گفتن خود اینما علیه همون از رسول الله داشتیم از امیر المومنین و انسنه مختلف وقتی که میگه فرسان بگیم که بربتی رو چکونه حضرت زامن نیست معناش اینه که اشیایی اصل ذات وجودش من، من منفوره مردوده اصل وجودش و از شدیم قاعده اینطور اختزامی میکنه هر چیزی که اصل وجودش یعنی اعدامش درست باشه و اصل وجودش منفول باشه جمعی آثار مترتبه باطله این طبق واردش اینه و این توضیحاتش تا باید که تحرات نمی انصافاً انصافا بله احتمالی که ما دادیم شاید اعراس هم مثل هدی زاتن خارج باشه نه مکه بر استرخم میکنه کنه نه مدینه البته این بوده اونی که از پیغمبر نقل مردها برای مردها یا زنها برای زنها و شعری که خواب باز مثلا مهیج نباشه شهواتو شهوازلود نباشه نخات مثلا ناموسی توش نباشه مثلا اون شعری که از پیغمبر نقل شده اینی که برقوم شیخ توصی هم در استفسار و در حساب نهایه فتوا داده ظاهرا اینطور باشه بعیده بله اگر بخویم قالب تخصیص بشیم خصوص احیاء اون تخصیصه اما بعید نیست مسئله اعراس مطلقاً از بنا اصلا خارج باشه با این قیدی که گفته شد زنها برای زنها مرزها برای مرزها و مغنیه نباشه ظاهراً یعنی حتی از قنای متعارب این حسن صوتیه ایراد صدای خوب چیزی نیست و اما اینکه در اعراس دست زده بشه تو روایت ما نیست تو فتاوا هم نیست اما تو روایت اهل سنت هست اصلا ارز کردم به نظر من در کتاب به چیز دیدم در کتاب مغنی ابن قدامه دیدم یستحب بود در اصلا به یستحب و دره. و فکر میکنم از احمد اونه همبل نه خودش که همبلیه فکر میکنم از از احمد برقی میکنه اینها در روایت ما نهیست ولذا اون چیزی که در روایت ما تو اعراس در میاد و در فتاوا فقط صوت حسن و آواز خاندنه و در روایت اهل صدر راجع به دف تسامح بیشتر شده تو روایات ما هم انصافا دفع هست جزو آلات موسیقی از در کتب مشهور نیست اما در مجموعه کتب آلات بربط و او در روایت فراوان نیست لذا مجموعه این شواهد که درست میشه انصافا در صفحه شیعه و مجموعه روایات کاملا واضحه مسئله قومت میمونه تحریف موضوعی که ایشالله میخواست که روز تبا بکنیم پس بنابراین استثناء اعراس با این قیودی که گفته شد استثناء نیست استثناء اعیاد استثناءست وکن ثابت نشد حدی هم استثنایی، نیست تخصیص نیست اعیاد هم که ثابت نشد این تا اینجا موند اون قسمت اخیری که تشکیل سه موضوعی که پردر شد سالالله الله. Vielen Dank.